أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما مولانا وصاحبنا بغية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري بلايتهم ومبغذي شيعتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصاعة وفي كل صاعة وليا وخافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك دوعا وتمتعه فيها طويلة. السلام علیکم یا مولاتنا یا فاطمه الزهراء السلام علیکم یا اهل بیت النبوه بحمد الله به انایات خاصه وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام ادله اقلیهی که برای به شخصی وجود آورده شده بود اهم اون ادله مورد بررسی و نقد قرار گرفت ادله که از شهود برای وحدت شخصی وجود آورده شده بود همچنین مورد بررسی و تحلیل دقیق و نقد قرار گرفت و میرسیم به عدله نقلیهی که برای وحدت شخصی وجود آورده شده در فضای تشیع و آلمان شیعی به خاطر اعتنای شدید به تعالیم و دستورات وحیانی اسلام و تمسک به آیات قرآن روایات اهل بیت علیه السلام، این ادله نقلیهی که برای وحدت شخصی وجود آورده شده از جایگاه بسیار مهمی برخورداره و بسیار این ادله سرنوشت ساز هست و اونهایی هم که از بین شیعه قائل به وحدت شخصی وجود شدند ولو اینکه تعالیم عرفانی رو پذیرفتند اما به خاطر انتصابشون به تشیع و اهل بیت اسمت و تهارت نمی توانند خود را بیگانه از آیات و روایات و بلکه در مقابل اونها نشان دهند لذا در تلاشند بسیار که قرآن و روایات اهل بیت علیه السلام رو نیز مطابق وحدت شخصی وجود جلوه بدن و بگن که توحید حقیقی اسلام همان وحدت شخصی وجود هست لذا از این جهت این بحث ادل نقلیه بسیار حائز اهمیت هست و چه بسا بسیاری از کسانی که در فضای های علمیه شیعی حتی درس خوندهاند و قائل به وحدت شخصی وجود شدهاند به خاطر تعلقشون به آیات و روایات و از طرفی عدم توان پاسخگویی به ادله‌ای که از آیات و روایات طرح شده و به اون عدله تمسک شده برای اثبات شخصی وجود عدم توان پاسخگویی به این ادله بوده است و چون فکر کردند که اهل بیت اسمت و طهارت و قرآن کریم میخواهند وحدت شخصی وجود را بیان بکنند این قول رو پذیرفتند و قائل به این نوع وحدت وجود عرفانی شدند این از این جهت طرح این دلیل بسیار اهمیت داره از در جهت دیگر همینطور که در بحث قبل ما مشاهده کردیم دیدیم که ملاک رحمانی بودن و غیر رحمانی بودن شهودات و مکاشفات مطابقت اون با آیات و روایات و خود شهود فی نفسه نمی تواند دلیل باشد و دلیل مستقلی نیست کما اینکه خود ابن عربی در جلد جلسه صفحه هشت بیان میکنه که شعر میزان کشف است اگر ما می خواهیم ببینیم که این کشفی که برای ما اتفاق افتاده کشف رحمانی است و الهی است و از جمله کشفهای شیطانی و غیر رحمانی نیست ملاک اون مطابقت با شرع است و ما باید اون رو با شرع بسنجیم لذا بررسی دقیق آیات و روایات در این زمینه بسیار مهمه که ببینیم آیا واقعا شرع این را بیان میکند یا نه که اگر هم لو فرز و لو سلم شهودی باشد که ما در بحث قبل ثابت کردیم که قطع نظر حتی از بحث حجیت شهود هیچ شهودی دلالت بر بحثت شخصی وجود نداره لو که حتی بگیم که همچین چیزی هم هست آیا این با میزان خودش که همون شعر هست سازگار هست یا سازگار نیست لذا انشاءالله در این بحث ابتدا به بررسی آیاتی که در این زمینه به اونها استدلال شده و تمسک شده میپردازیم و بعد الله به انایات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به بررسی روایاتی که در این زمینه به اون تمسک شده خواهیم پرداخت انشاء الله قبل از اینکه وارد بحث خود آیات و روایات بشیم لازمه که یک مبحث بسیار یک مبحث بسیار مهمی این توضیح داده بشه و اون اینه که بحثی رو تحق می کنند به عنوان حجیت این معانی عرفانی از آیات و روایات یا به تعبیر دیگر حجیت تعویلات عرفانی که این برداشت هایی که از آیات و روایات در لسان عرفای مستلح و ابن عربی شده و معانی خاصی از اونها شده اینها روی چه حسابی حجته لذا این بحث رو ترک کردن که حجیت این تعویلات عرفانی خود ابن عربی با این که استفاده‌های خلاف ظاهر بسیار زیاد و فراونی از آیات قرآن و کلمات و اخبار وجود نازنین رسول خدا داره و تعویل بسیار عجیب و غریبی که با هیچ منهجی سازگار نیست نه منهج لغوی نه منهج اصول تکلم و اصولی نه منهج عقلی نه منهج شهودی تعویلات عجیبی میکنه که با هیچ کدام از این منهجها سازگار نیست و احیانا تعبیرهای بسیار خندداری هم هست خب این تحویلات رو با اینکه اون بسیار در کلماتش هست و از این جور عبارات رو در کلماتش فراوون داره و احیانن در بعضی از عبارات از اون تعبیر به اشاره هم میکنه و میگه که این به تعلیم الهی است این اشاراتی رو که ما بیان میکنیم اینها اشاره هستند تفسیر نیستند تعویل نیستند اینها اشاره هستند بیان هم میکنه که این به تعلیم الهی است و علمای رسوم هم اونها رو نمیفهمند چون اونها این تعلیم الهی رو ندارند که میتوانند عزیزان برای تحقیق بیشتر رجوع کنند به فتوها جلد یک صفحه 280 و 281 هشتاد و, هشتاد و یک جلد دو صفحه 279 و نو و جلد دو صفحه پونسد و و, صفحه و جاهای دیگری که هست حتی در فصوص هم این مطلب موجود هست با اینکه خود ابن عربی استاد تعویلات عجیب غریبه استاد این های خلاف ظاهر و دور از وادیس و بیانات این رقمی بسیار داره که از کردیم خودش تصریح میکنه و تعبیر میکنه که این اشاره است و علمای رسوم اون رو نمیفهمند با اینکه اینها رو داره خب چطور میشه که علما نفهمند معلومه که روی منهج خاصی نیست خودش تحبیل میکنه که این به تعلیم الهی است آقا از کجا شما این حرف رو زدید؟ من خداوند متعال به من تعلیم کرده بیشتر از این نپرس علما این رو نمیفهمند چون به تعلیم الهی است با اینکه از این چیزها زیاد داره و خودش یک اینگونه فردیست با این حال کسانی رو از جمله فلاسفه و متکلمان که در بعضی از جاها از ظاهر قرآن اینها دست برداشتند و معنای دیگری رو که مطابقت با مثلا ظهور لفظی قرآن نیست به اون معانی عقص کردن خود ابن عربی اینها رو بسیار مورد نکوهش و سرزنش قرار میده و اونها رو اهل تعویل میخواند میگوید که حالا چون فرصت نیست من سریع به بعضی از عبارات اون هم به مضمون عبارات به ترجمه عبارات اکتفا می کنم. و فرصت نیست دیگه ما کامل عبارات رو نقل بکنیم به بررسی اون بپردازیم بار که فقط انشاءالله از عزیزان در جریان بحث واقع بشن میگوید اهل تعویل به ادراک حقیقت نمی رسند و مرتکب حرام شده اند و روز قیامت خداوند متعال از اونها بارها بازخواست میکند چون اونها از ظاهر قرآن دست برداشتند تعویل کردن ظاهر قرآن رو کار حرام انجام دادند. خدا هم روز قیامت از اینها بازخواست میکنه فتوحات جلد دو صفحه 470 یعنی که نباید از ظاهر قرآن دست برداشت میگوید اگر چیزی از کتاب خدا را تعویل کردیم و گفتیم که مراد متکلم در نفس الامر چنین بوده است درجه ایمان ما زائل می شود چرا که در اینجا دلیل را بر خبر حاکم کرده ایم و حکم ایمان تعطیل گشته است فتوحات جلد دو صفحه 660 اگر شما اهل ایمان هستید به خدا ایمان دارید به رسول خدا ایمان دارید باید اون چیزی رو که خدا و رسول در کلماتشون میفرمایند همون رو بپذیرید ولو اینکه اون مثلا با عقل شما نسازه ولو اینکه ظاهر اون رو نفت نتوانید شما بیان بکنید نتوانید اون ظاهر رو بفهمید با چارچوب شما و چارچوب ذهنی شما اینها سازگار نباشد با این حال شما باید این رو بپذیرید و اگر نپذیرفتید این رو و گفتید مراد متکلم چیز دیگری بوده درجه ایمان شما زائل شده است و فی الواقع ایمان به این خبر پیدا نکردید اید بپذیرید که هرچه خدا و رسول گفته است حق است لذا شما آمده اید دلیل را بر خبر حاکم کرده اید میگوید سزاوار است که عاقل اگر بخواهد خدا را بشناسد خدا را در آنچه در کتبش و بر زبان رسولش نازل کرده است تقلید نماید خداشناسی تنها از راه خود فرمایشات خداوند متعال و اهل بیت اسمت و تهارت کلا این اهل بیت رو به اثر ظاهر قبول نداره وجود نازلین رسول خداست اگر میخواید معرفت به خدا پیدا بکنید اگر میخواید عارف حقیقی باشید اگر میخواید خدا را بشناسید باید تقلید تام و تمام از کلمات خدا و رسول خدا داشته باشید. کسی که بخواهد به معرفت الله برسد غیر از تقلید اخبار رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم غیر از تقلید آیات قرآن حقیقتا اون معرفت خدا را نداشته است. و تعبیرم میکنه که اصلا انسانی که عقل دارد باید این را بفهمد و اگر غیر از این کند کار غیر عقل را انجام داده و عمل آقل آنهایی را انجام نداده فتوحات جلد دو صفحه 298 در جای دیگه میگه در میان بندگان خدا هستند کسانی که هم از کشف محرومند و هم از ایمان خب اینا که آنان عقلا آنان و بنده فکرند بعد عباراتی رو دو تا اینجا که به اینجا میرسه اینان از ظاهر به باطن رفته اند در حالی که ظاهر را کنار گذاشته اند دویست و پنجاه و 257 میگه اینها کسانی هستن اینهایی که از ظاهر قرآن عدول کرده اند یک معنای غیر از معنای ظاهر قرآن رو اخذ کردن، احیانا تعبیر می کنند از این معنا به معنای باطنی اینها کسانی هن که نه تنها که کشف ندارند بلکه ایمان رو هم ندارند. از ایمان هم محرومند. لذا کسی که اهل ایمان هست، کسی که اهل کشف هست، باید تمسک به ظواهر قرآن و اخبار رسول خدا صلی الله علیه و, و سلم داشته باشه طبعا خود ابن عربی نیز نباید این کار رو بکنه نباید در تمسکش به آیات و روایات دست به تعویل بزنه که انشاءالله حالا مورد بررسی این رو قرار میدیم که آیا به این ملتزم بوده یا, نق... یا نه دقیقا خلاف این رو عمل کرده در جای دیگه میگه این اخبار برای آن است که مردم آن را فهم کنند. اصلا خدا خوب به این لسان حرف زده که خب مردم بفهمند. اگر بنا بود چیز دیگری رو به مردم بفهماند، خب تو دیگری حرف میزد. اینی که به این لسان حرف زده یعنی ما باید این را بفهمیم. این درست است. این حجت است. فتوحات جلد دو صفحه نوزده در جای دیگه میگه خدا خود را به چیزهای متصف کرده است که عقل آنها را از راه دلیل نفی می و تنها از طریق ایمان و تسلیم پذیرا می شود بله قبول داریم که یک چیزهای با عقل سازگار نیست نمی توانیم اونها را معنا بکنیم و تنها از طریق ایمان ما میتوانیم. اینها رو بپذیریم اگر تسلیم خدا و رسول بودیم میتوانیم بپذیریم بعد عباراتی رو داره تا به اینجا که اهل کشف یعنی کسانی که ای دارند که ورای طور عقل هست اینها بالاتر از عقل چیزی رو دارند که ولو اینکه اون قوه اون چیزی که سبب ادراک اونها هست با عقل سازگار نیست اما اونها این رو دارن قوه برای طور عقل رو دارند. اهل کشف یعنی کسانی که قوهی دارن که برای طور عقل است، این مطلب را همانطور ادراک کنند که عامه آن را همون همانطور که ما از ظاهر کلمات قرآن مطلبی رو میفهمیم همین که عموم مردم بدون بررسی‌های های عقدی وقتی به یک ظاهری نگاه میکنن، یک مسئله رو ادراک میکنن، اهل کش، اونایی که فراتر از عقل قدم اند، اینها همونطور که مردم این رو میفهمند همون ظاهر رو اینها درک میکنن، فتوحات جلد دو صفحه 116 و, و در جاهای دیگری هم این مطلب رو داره، در جای دیگه میگه اهل ایمان، آنانن که انبیا و رسول را در آنچه از خدا خبر میدهند تقلید می کنند. اهل ایمان اونی که اهل تقلید از خدا و رسوله اگر دیدید که نمی تقلید بکنید از خدا و رسول بدونید که اهل ایمان نیستید اگر خواستید ظاهر رو تعویل ببرید به حرف ابن عربی شما بدونید که اصلا ایمان به خدا و رسول ندارید اهل ایمان آنانند که انبیا و رسول را در آنچه از خدا خبر میدهند تقلید میکنند نه آنکه تقلید صاحبان فکر و اهل تعویل را نمایند تقلید اهل تعویل رو نمیکنند اگر کسی تعویل برد ظاهر رو تقلید اون نمیکنند اگر کسی به حسب عقل کلامی رو معنا کرد اون رو نمی نمیکنند که اخبار را طبق ادله عقلی خیش تعویل میکنند میگه تقلید صاحبان فکر و اهل تعویل که اخبار رو روتب قلیل عقلی تعویل میکنند اهل ایمان اینطور طور نیستند که از اینها تقلید بکنند فسوس و الحکم جل جلد دو صفحه 123 بعد میگه من ترین مردم اهل قرآنند من ترین مردم اهل قرآنند اینو در جلد دوی فتوحات صفحه 443 میگه بعد در جای دیگه میگه و اهل قرآن همون اهل الله هستند که این رو در فتوحات جلد دو صفحه 299 میگه یعنی میگه که اگر شما اهل قرآن بودید بناتون برین بود که از خود قرآن تبعیت کنید هرچرا قرآن گفته ولو اینکه با عقلتون سازگار نباشد شما اهل قرآنید و سعادت منترین مردمید و در عبارتی بعدی که خاندیم اینه که اهل الله اهل کشف و رفای حق حقیقتا اهل قرآنن بعد در جاهای دیگری در فتوحات مطالبی رو از این قبیل داره که حالا آدرس های زیادی من اینجا نوشتم که حالا دیگه به اونها اشاره نمی‌کنیم. البته عرض کردم که خود ابن عربی فراوان تعویل های خلاف ظاهر خلاف عقل داره تحویلهایی که با هیچ منهجی سازگار نیست که حالا انشاءالله به بعضی از اونها در بحث عدل نقلی وحد شخصی انشاءالله اشاره خواهد شد در غیر این بحث هم در حتی معانی خدا و روایات از اینجور امور زیاد داره بنابراین علالقاعده طبق مسلک ابن عربی فقط باید به ظاهر عمل کرد رضا بسیاری از شاگردان مسلک ابن عربی خود اونها بر این اند که دلیل این تعویلات عرفانی از آیات و اخبار دلیل اینجور معنا کردن آیات و اخبار همون حجیت زواهره وقتی که شما ثابت کردید که ظواهر قرآن و اخبار برای ما حجت هست خب اینها در واقع کاری جز عمل به زواهر قرآن و اخبار نمی کنند لذا همان دلیل حجیت زواهر برای اینها کافی است و اونها فی الواقع فراتر از ظاهر اخبار و آیات قرآن نمی روند بعضی دیگر هم اینطور بیان میکنند که وقتی شهود ما با ظاهر قرآن و روایات سازگار هست میبینیم که آنچرا که ما در عوالم بالا به قول خودشون شهود کردیم دقیقا همون چیزی است که زواهر قرآن و روایات داره اونها رو بیان میکنه وقتی که این زواهر با شهود ما سازگار هست با اون چیزی رو که ما حقیقتا یافتیم سازگار هست دیگه چه دلیلی وجود داره که ما دست از این زواهر برداریم و بخواهیم اینها رو تعویل بکنیم یعنی ادعا میکنن که هر کاری ما کرده ایم و هر دلیلی تمسک کرده ایم از آیات قرآن و روایات به هر آیه ای از آیات قرآن و روایات تمسک جست ایم خواستیم از اونها مطالب عرفانی و مطالب وحیانی رو استفاده بکنیم فنواغه از ظواهر اونها این استفاده رو کردیم و کاری فراتر از این انجام ندادیم. لذا در این بحث خودمون که همون بحث ادله از قرآن و روایات هست که به این ادله برای وحدت شخصی وجود تمسک شده است به این ادله بحث ما بیان این ادله هست باید طبعاً ما دنبال استفاده وحدت شخصی وجود از زواهر قرآن و روایات باشیم و اینها میخواند زواهر قرآن رو داله بر وحدت شخصی وجود بیارند طبعا باید این زواهر و این عدلهی که از قرآن و روایات اوردند به نحوی باشد که ظاهرشون دلالت بر وحدت شخصیه وجود بکنه نه اینکه چون ما از قبل وحدت شخصیه وجود رو پذیرفته ایم حکم میکنیم که آیات قرآن و روایات هم لابد باید این را بگویند و چیزی غیر از این را نمیتوانند بگویند نه طبعا نباید اینطور باشه و خود آیات قرآن و رو میخواهند دلیل بگیرند خود آیات و قرآن و روایات باید دلالت بکند بر وحدت شخصی وجود طبعا باید به نحوه حجت دلالت بکند که همون دلالت زواهر قرآن به خود وحدت شخصی وجود هست و الا در واقع تمسک به دلیل دیگری است که این خلف تمسک به قرآن و روایات به برای وحدت شخصی وجود هست که در حقیقت شما اصلا قرآن روایات رو دلیل مستقل نگرفته اید برای وحدت شخصی وجود و همچنین این تمسک به است که خود ابن عربی در کلمات فراوون خودش اون رو مورد نکوهش و سرزنش خودش قرار داده لذا ما هم انشاء الله و به انایات آقا امام زمان علیه السلام نشون خواهیم داد که هیچ یک هیچ یک از آیات قرآن و روایات اهل بیت اسمت و تهارت اولاً ظهورشون دلالت بر وحدت شخصیه نداره و با اون سازگار نیست ثانیه بسیاری از این آیات و روایات حتی با تعویلات بعیده و خلاف ظاهر هم قابل حمله به وحدت شخصی وجود نیست یعنی بسیاری از این آیات و روایاتی که اینها بهش تمسک کردن برای اثبات وحدت شخصی وجود به نحوی هستن که حتی ما قائل به صحت تعویل هم باشیم بپذیریم که میتوانیم خلاف ظاهر آیات قرآن و روایات رو معنا بکنیم و اون رو دلیل بگیریم برای مدعای خودمون اینها به نحوی هستن که حتی با تعویلات بعیده اونم نه تعویلات غریبه و تعویلات بهیده و خلاف ظاهر هم اینها قابل حمل بر وحدت شخصیه وجود نیستند ثالثا اون چیزی رو که ما انشاءالله در این بستشان خواهیم داد اینه که ظهور همه آیات و روایات در نفی وحدت شخصیه هست و رابعا انشاءالله بیان خواهیم کرد علاوه بر اینکه ظهور بسیاری از ادله و ظهور همه ادله در نفی وحدت شخصیه هست روایاتی داریم سریح در نفی و بطلان وحدت شخصی وجود که انشاءالله در این جلسات باقی مانده به بررسی اینها خواهیم پرداخت و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته